کتاب دختری با پیراهن چوبی و سی و دو دیگر نویسنده اندرو لنگ ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افثانه ی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده مریم موجی این داستان شاهزاد خانم بلا فلور. یکی بود یکی نبود. غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. روزی روزگاری مردی دوتا پسر داشت. وقتی که اونها بزرگ شدند پسر بزرگتر به دنبال بخت خودش به سرزمین های دور رفت و سالهای سال کسی خبری از اون نشنید. در این موقع پسر کوچکتر توی خونه با پدرش موند و پدر عاقبت در کهنسالی درگذشت و ثروت خوبی از خودش به جا گذاشت تا مدتی پسری که تو خونه مونده بود آزادانه پول پدرش را خرج کرد و بر این باور بود که این پول برای لذت بردن اون هست اما یک روز وقتی که داشت از پله ها پایین می اومد از دیدن ای که وارد خونه شد و طوری به اطراف نگاه می کرد که انگار بهش تعلق داره متعجب شد. مرد پرسید منو فراموش کردی؟ مرد جوان با گستاخی جواب داد چطور میتونم کسی رو که هرگز ندیدم فراموش کنم؟ غریبه جواب داد من برادرت هستم. بدون پولی که امید داشتم به دست بیارم به خونت برگشتم. بدتر از همین که همه اهل دهکده به من گفتند که پدرم فوت کرده حاضر بودم مالی رو که پیدا نکردم ببخشم و اون رو یک بار دیگه ببینم برادر ثروتمند گفت اون شش ماه پیش درگذشت و به عنوان سهم تو صندوق چوبی قدیمی رو که تو اتاق زیر شیروانی قرار داره برات گذاشت بهتره به اونجا بری و اون رو برداری من دیگه وقتی برای صحبت کردن با تو ندارم اون بعد از گفتن این حرف رفت. مرد سرگردان راه اتاق زیر شوونی رو در پیش گرفت که در بالای انبار بود و صندوق چوبی رو که به قدری کهنه بود که انگار همین الان از هم متلاشی میشد در اونجا پیدا کرد. اون به خودش گفت: این صندوق کهنه به چه دردم میخوره؟ ولی خب میتونم باش آتیشی روشن کنم و خودم رو گرم کنم از این بدتر هم ممکن بود بشه. مرد که خوزه نام داشت صندوق رو پشتش گذاشت و راه مهمانخانه رو در پیش گرفت بعد تبر کوچکی قرض گرفت و شروع به شکستن صندوق کرد در همون موقع یک کشوی مخفی پیدا کرد که کاغذی در اون قرار داشت اون کاغذ رو باز کرد بدون اون که ببینه چه چیزی ممکنه در اون نوشته شده باشه اما وقتی که خبر خوند بسیار متحیر شد توی نامه پدرش از یک بدهی بزرگی که یک نفر بهش داشت خبر داده بود. اون کاغذ با ارزش رو توی جیبش گذاشت و شتابان نزد صاحب مهمانخانه رفت تا نشانه مرد مقروزی رو که اسمش توی کاغذ بود بپرسه. بعد فوراً به جستجوی اون فرد رفت. مرد بدهکار فرد پیر و خصیصی بود که در اون طرف دهکد زندگی میکرد. ماها بود که امید داشت کاغذی رو که نوشته بود گم یا نابود شده باشه اما وقتی که کاغذ رو دید واقعا تمایلی به پرداخت بدهیش نداشت به هر حال غریبه اونو تهدید کرد که پیش پادشاه میره و وقتی که مرد خسیست دید چاره ای نداره سکار رو یکی یکی شمرد غریبه سکار رو گرفت و در جیبش گذاشت و به مهمانخانه برگشت در حالی که احساس میکرد حالا دیگه مرد ثروتمندی شده چند هفته بعد از این ماجرا، اون در حال قدم زدن تو خیابونهای نزدیکترین شهر به اون دهکده بود که زن بی رو که به تلخی گریه می کرد دید. اون متوقف شد و جریان رو پرسید. زن حقه هق کنان جواب داد که شوهرش در حال مرگه و از همه بدتر کسی که شوهرش بهش مقروزه قصد داره اون رو به زندان بندازه. غریبه با مهربونی گفت آسوده باش. اونها نه شوهرش رو به زندان میفرستن و نه وسایل تو رو به حراج میگذارن من نه تنها قرض اون رو خواهم پرداخت بلکه در صورت مرگش هزینه کفن و دفنش رو هم به عهده میگیرم. حالا به خونه برو و تا میتونی ازش پرستاری کن. زن همین کارو کرد اما با وجود مراقبت های اون شوهرش درگذشت. غریبه هزینه دفنش رو پرداخت اما هزینه ها بیشتر از اون چیزی که اون فکر می کرد شد. و بعد از پرداخت همه خرجها فقط سه سکه براش باقی موند. اون با خودش گفت حالا چیکار کنم؟ فکر کنم بهتر باشه به دربار برم و به پادشاه خدمت کنم. اول فقط خدمتکار پادشاه بود. برای حمام کردن پادشاه آب می آورد و می دید که تختخواب پادشاه بسیار مجلله. اما به قدری وظایفش رو خوب انجام داد که توجه اربابش رو به خودش جلب کرد و در مدتی کوتاه خدمتکار اختصاصی پادشاه شد. اتفاقا در این زمان برادر کوچکتر همه پولی رو که به ارث برده بود خرج کرده بود و نمیدونست که چطوری دیگه زندگیشو بگذرونه. اون به یاد برادرش که محبوب پادشاه بود افتاد و نالکنان به قصر رفت. تا از برادرش که خودش در حق اون بدی کرده بود خواهش کنه تا ازش حمایت کنه و کاری براش و پا کنه برادر بزرگتر که همیشه آمادگی کمک کردن بود با پادشاه صحبت کرد و روز بعد مرد جوان کار خودش رو توی دربار آغاز کرد متاسفانه مرد تازه وارد ذاتن کین توز و حسود بود و تحمل دیدن کسی بهتر از خودش رو نداشت اون به وسیله جاسوسی از طریق سوراخ کلید و گوش دادن پنهانی فهمید که پادشاه با اینکه پیر وزشته عاشق شاهزاده خانم بلافلور شده که باهاش حرف نمیزنه و خودش رو در قلعه کوهستانه که هیچکس از جای اون رو نمیدونه مخفی کرده. مرد با در حالی که دستهاش رو به هم میمالید با خودش فکر کرد خوب شد. راحتی میشه پادشاه رو وادار کرد که برادرم رو به دنبال خانم بفرسته و اگر دست از پادراستر برگشت سرش رو برباد خواهد داد در هر صورت اون مانعی بر سر راه من نخواهد بود به همین دلیل فورا پیش پیشگار رفت و درخواست دیدار با پادشاه رو کرد و گفت که میخواد اخبار بسیار مهمی رو به پادشاه اطلاع بده پادشاه اون رو بلافاصله به حضور پذیرو و بهش گفت که فورا رو که میخواد بگه مرد جواب داد آه سرورم شاهزاده خانم بلافلور و بعد انگار که ترسیده باشه حرفش رو کرد پادشاه با بی‌صبری پرسید شاهزاده خانم بلافلور چه شده مرد گفت اونطوری که از زمزمه های افراد دربار به گوشم رسیده اعلی حضرت می‌خوان از مخفیگاه اون با خبر بشن پادشاه مشتاقان فریاد زد نیمی از کشورم را به مردی که او را برایم بیاورت خواهم بخشید. حرف بزن ای فرو مایه، آیا مرقان هوا این راز را برایت آشکار ساختند؟ مرد خواه این جواب داد، من نمیدونم. برادرم با خبره، اگه اعلیحضرت از اون بپرسن، اما قبل از اینکه حرفش رو تموم کنه، پادشاه با اسای سلطنتیش زربه ای به صفحه طلایی که به دیوار آویزون بود زد، و خطاب به خدمتکاری که با شنیدن صدای بلند این ضربه برای اجرای دستورات پادشاه دویده بود فریاد زد فوراً به خوزه بگو که به اینجا بیاید وقتی که خوزه متعجب از اینکه چه چیزی باعث احضار غیرمنتظرش شده وارد شد زبان پادشاه تقریباً از شدت خشم و هیجان بند اومده بود پادشاه با لکنت گفت فوراً شاهزاده خانم بلافلو را نزد من بیاور چون اگر بدون او بازگردی میگویم که تو را در دریا غرق کنند. بعد بدون هیچ حرفی دیگه ایتالا رو ترک کرد و خوزه رو در بحت و حیرت گذاشت. خوزه با خودش فکر وقتی که شاهزاده خانم بلافلو رو هرگز ندیدم چطوری میتونم پیداش کنم؟ اما اینجا موندن هم بیفایده است چون فقط سرم رو برباد میدم. اون به آرامی به استاب رفت تا اسبی برای خودش انتخاب کنه. چند ردیف از بهترین ها که اسم هر کدومشون با حروف طلایی بالای آخرشون نوشته شده بود وجود داشتن خوزه با تردید از یکی به دیگری نگاه میکرد و نمیدونست کدوم یکی رو انتخاب کنه تا اینکه یک اسب سفید پیر سرشو چرخوند و بهش اشاره کرد که نزدیک بشه اسب نجوا کرد منو بردار همه کارها به خوبی پیش میره خوزه آن چنان از معموریتی که پادشاه بهش سپرده بود گیج بود که از شنیدن حرف زدن اسب متعجب نشد. اون به طور غیر ارادی دست رو افسار گذاشت و اسب سفید رو از استاب بیرون برد و موقع که داشت سوار اسب میشد، حیوان دوباره گفت: اون سه قرص نانی رو که اونجا میبینی بردار تو جیبت بگذار. خود این کار رو کرد و به قدری برای رفتن عجله داشت که چیزی نپرسید. اما خودش رو به زین آویزون کرد. اونها بدون اینکه ماجرایی براشون پیش بیاد راهی طولانی رو طی کردند اما بالاخره به تپهٔ ها رسیدند اسب توقف کرد و گفت اون سهتا قرص نونی رو که برداشتها برای مرچه ها خورد کن اما خوزه که شک داشت جواب داد برای چی شاید خودمون به اون نیاز داشته باشیم اسب گفت نگران نباش همه اونها رو به مرچه ها بده از هیچ فرصتی برای کمک کردن به دیگران دریق نکن وقتی که خورده های نون روی جاده ریخته شد اسب نل تاخت کم کم به معبر سنگی بین دوتا کوه رسیدند و چشمشون به اقابی افتاد که در تور شکارچی به دام افتاده بود اسب گفت پیاده شو اون تور رو پاره و حیوان بیچاره را آزاد کن خوزه اعتراض کرد اما این کار خیلی وقت میگیره و ممکنه به شاهزاده خانم نرسیم اسب جواب داد مهم نیست فرصت کمک کردن به دیگران رو از دست نده وقتی که تور پاره و عقاب آزاد شد اسب چهار نال تاخت مسافت بسیار زیادی رو رفته بودند که بالاخره به رودخونه رسیدن و در اونجا چشمشون به یک ماهی افتاد که روی شن افتاده بود و داشت خفه میشد اسب گفت مای کچولو رو میبینی اگه اونو به آب نندازی میمیره خوزه فریاد زد اما واقعا اگه ما رو اینطور تلف کنیم هیچ وقت شاهزاده خانم بلافلو رو پیدا نمیکنیم اسب جواب داد کمک کردن به دیگران وقت تلف کردن نیست. خیلی زود ماهی کوچولو با شادی شناکنان از اونجا دور شد. کمی بعد از اون به قلعه رسیدن که در بین جنگل انبوهی قرار داشت و درست در مقابل اون شاهزاده خانوم بلافلور داشت به مرغاش دونه می داد. گفت حالا گوش کن. من انواع شرینکاری ها رو انجام می که شاهزاده خانم بلافلور سرگرم می بعد اون به تو میگه که دوست داره کمی سواری کنه تو باید به اون کمک کنی تا پشت من سوار بشه وقتی که نشست من شروع به شهه کشیدن و جفتک انداختن میکنم و تو باید بگی که من قبلا هرگز به زنی سواری ندادم بهتره تو هم پشت سر اون سوار بشی تا بتونی منو مهار کنی وقتی که پشت من سوار شدید مثل باد به قصر پادشاه میریم خوزه دقیقا به گفته‌های اسب عمل کرد و همه چیز همونطوری که حیوان پیشگویی کرده بود اتفاق افتاد. طوری که وقتی که بیدرنگ چهار نل به سمت قصر تاختند خودشون هم متعجب بودند. اون موقع بود که تازه شاهزاده خانم فهمید که اسیر شده. با این حال چیزی نگفت. اما بی صدا پیشبندش رو که دونه برای جوجه‌ها درون در اون بود گشود و در یک لحظه دونه ها روی زمین پراکنده شدند. اون فریاد زد آه دانه ها از دامنم ریختن لطفا پیاده شو و برام جمعشون کن اما خوزه فقط جواب داد جایی که داریم میریم یک عالم دونه وجود داره اسب تاختن ادامه داد حالا به جنگل رسیده بودند شاهزاده خانم دستمالشو بیرون آورد و اون رو به طرف بالا انداخت که به بالاترین شاخه یک درخت گیر کرد اون گفت وای من چقدر احمقم دستمالم از دستم در رفت از درخ بالا میری اونو برام بیاری؟ اما خوزه جواب داد جایی که داریم میریم یک عالم دستمال وجود داره اسب به تاختن ادامه داد بعد از جنگل به رودخانهی رسیدن و شاهزاده خانوم انگشتری رو از انگشتش درآورد و توی آب انداخت بعد حقیق حق کنان گفت چقدر بیتوجه هستم انگشتر مورد علاقم رو گم کردم یه لحظه سب کن و ببین میتونی اونو برام پیدا کنی اما خضه جواب داد جایی که داریم میریم یک عالمه انگشتر وجود داره اسب به تاختن ادامه داد بالاخره از دروازهای قصر گذشتند و قلب پادشاه از مشاهده بلافلور محبوبش خوشحال شد اما شاهزاده خانوم انگار که پادشاه مگسی باشه اون رو کنار زد و خودش رو در نزدیکترین اتاق محبوس کرد و هرچه که پادشاه التماس کرد در اتاق رو باز نکرد تنها چیزی که گفت این بود سه چیزی رو که توی راه گم کردم برام بیارید تا شاید فکری به حالت بکنم پادشاه نومیدانه مجبور شد تا با خوزه مشورت کنه و گفت چاره‌ای نیست فقط تویی که از جای اونها خبر داری باید بری و اونها رو بیاری اگه بدون اونها برگردیم میگم که تو رو توی دریا غرق کنن. خوزه بیچاره با این حرفها به دردسر زیادی افتاد. اون فکر میکرد که هرچی رو که ازش خواسته شده انجام داده و خطری زندگیشو تهدید نمیکنه. با این حال، سری فرود آورد و رفت تا با دوستش اسب مشورت کنه. اسب بعد از شنیدن ماجرا گفت: خودت رو ناراحت نکن. سوار شد تا بریم و دنبال این وسایل بگردیم. خوزه فوراً سوار اسب شد. اونها اونقدر رفتن تا به تپه ها رسیدن. بعد از پرسید آیا میخوای دونه ها رو به دست بیاری؟ خوزه جواب داد: "خواستن من چه ای داره؟" اسب گفت: "خب ها رو صدا بزن و بهشون بگو دونه ها رو برات بیارن. اگه باد بعضی از اونها رو پراکنده کرده، به جای اون دونه‌هایی رو که توی نونی بود که به اونها دادی برات بیارن." خوزه با تعجب گوش کرد. اون چندان اعتقادی به نقشه اس نداشت. اما فکر دیگه هم توی سرش نداشت به همین خاطر موچه ها رو صدا زد و به اونا گفت که با سرعت هر چه دونه ها رو براش جمع کنند بعد زیر درختی نشست و منتظر موند در همین موقع اسب چمنزار رو میچرخید و چمن رو میخورد یک دفعه حیوان سرش رو بلند کرد و گفت اونجا رو نگاه کن خوزه به عقب نگاه کرد و کوه کوچکی از دونه ها رو دید و اونها رو درون کیسه‌ای که به زین اسبش آویزون بود ریخت اسب گفت اعمال خوب دیر یا زود نتیجه میده سوار شو چون باید راه زیادی بریم وقتی که به درخت رسیدن دستمالی رو دیدند که مثل پرچم به آخرین شاخه آویزون بود دل خوزه دوباره ریخت و فریاد زد چطور اون دستمالو بگیرم اینجا به نردبون احتیاج دارم اسب جواب داد نترس اقابی رو که از تله نجات دادی صدا بزن تا برات اون رو بیاره خوزه عقاب رو صدا زد و به بالاترین شاخه درخ پرواز کرد و دستمار رو در بین منقارش گرفت و آورد. خوزه ازش تشکر کرد و پشت اسب سوار شد و به طرف رودخانه رفتن. شب بارون زیادی باریده بود و رودخونه بر اکس قبل که زلال بود گلآلود و متلاتم شده بود. خوزه پرسید وقتی که نمیدونم دقیقا انگشتر کجا افتاده و حتی نمیتونم اونو ببینم؟ چطور میتونم اونو از اعماق این رودخونه بیرون بیارم اسب جواب داد نترس ماهی کوچولو که جونشو نجات دادی صدا بزن تا اون رو برات بیاره اون ماهی رو صدا کرد و ماهی به اعماق آب رفت و پشت سنگ های بزرگ لغزید و سنگ های کوچک رو با دمش حرکت داد تا انگشتر رو پیدا کرد و اون را توی دهنش گرفت و برای خوزه آورد خوزه خوشحال از کاری که کرده بود به قصر برگشت اما وقتی که پادشاه اشای ارزشمند رو برای بلافلور برد اون گفت که هرگز در رو باز نمیکنه مگر اینکه راهزنی که اون رو به اینجا آورده در روغن سرخ بشه پادشاه به خوزه گفت خیلی متاسفم واقعا دلم نمیخواست اینطوری بشه اما میبینه که چاره ای ندارم وقتی که روغن داشت توی پاتیل بزرگ داغ میشد خوزه به استبل رفت تا با دوستش اسب مشورت کنه و ببینه راه فراری براش هست یا نه اسب گفت نترس پشت من سوار شو. اونقدر میتازم تا همه بدنم از عرق خیس بشه. بعد اون عرق رو به همه جای پوستت بمال. هر قد که روغن داغ باشه هرگز اون رو احساس نخواهی کرد. خوز سوال دیگه ای نکرد اما همون کاری رو که اسب گفته بود انجام داد. وقتی که مردان اون رو داخل پاتیل روغن جوش گذاشتن از دیدن چهره خندانش متعجب شدند. اون رو اونقدر اونجا نگه داشتن تا بلافلور فریاد زد که به قدر کافی پخته شده بعد جوان بسیار زیبایی از اون خارج شد که همه و بیشتر از همه بلافلور به اون علاق مند شد پادشاه پیر دید که بازی رو باخته از شدت نامیدی به داخل پاتیل پرید و به جای خوزه سرخ شد بعد خوزه به شرط اینکه با بلافلور ازدواج کنه به پادشاهی انتخاب شد و قول داد که روز بعد باهاش عروسی کنه اما اول به اسب رفت و اسب رو پیدا کرد و بهش گفت من زندگی و تاج و تختم رو مدیون تو هستم چرا همین کارها رو برام کردی اسب جواب داد من روح مرد ای هستم که تو همه مال خودت رو خرجش کردی. وقتی که جونت رو تو خطر دیدم، خواهش کردم همونطور که تو به من کمک کرده بودی، یارید کنم. چون همونطور که بهت گفتم، اعمال نیک روزی نتیجه خواهند داد. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب رودخانه ها و برکه های جادوی قصدهای باشکوه و مهمانی های بزرگ شاهانه پسسههایی از سفرهای دور و دراز با پای پیاده